قهرمانی عزیز سلطان لباد. خوشحالی لبشی حاوت میخواد نویکتی بیچش تیم جهوری مامستا هجر مکریانی هتین ولعتن. فرمون لگرمان بن. اجاری مکریانی بردواما لسل گیرانوی بسر حتکانی جیانی خویی او دالیت لوشتپا فقی جگرکیش بزور نفسی کودو نفسیان خلق کردم تا بوخم فیربوم او سادهان گوت ایبا تولاکیشی ناچار توتنو پرم پیدا کردو لسای حوالی ناجس نوا فیرج جگرکرم چند جاران ترکم کردو و گراو متوسری استاش که پیرمو نخوشمو دلین بود خرابا او بلایم بود ترک نکره د ان کارخانه قندی میاندوا او زور جوانو خوشا د ګل فقيه لبر ور زیر کې وشته پیه راینوه وتی چوندرم د ګل بار کن کامیون من پرکد شول سر بار سوار بوین بیانی لکن کارخانه د تازه د زنین بر سیمنه او هیڅ شمن لګیفندنی ن ل دل چی کارخانه رګی چونه جوړو تماشا چوی نصر چوم، ملا من کرد برسیتر تر بوین، نیوارو لبندیواریک قررزگ من بو، ملایک من لیه پیدا بو منیده ناسی، نانیده نیو، کارخانشی پیشنده این آخری پایز بو، بدشتی شارویران دا دهاتم، توشی بنده اگ بوم، ویستم بپرماو کالو پیتاو دانکنم، فکر، فکر، در بیشی باریکم لسر بنده کدید، با اقلی تواویخوام دچمه سر چلوکی، لديه فرينده داته اوبر بنا شكري ناليم حساب راز در نچو چلوبه در ده هد خست مينا و راست جوگو لقره دا قوم بوم بهزار در ده مدر سرما هموجيان ترو قرابي غارم دا لوسو کند خون بمالك دا کرد جنه که هر ديتمی خودار بو وتي اي بسم الله اوش چيا منش بهم ود ده هجان جندو کنیم فاقیم ی دی له برتندور خو موژ کړه د و تمنم حفته سال وو کباب مړ قط بیرم له و نه کړ دې بو کارو جیک باو کوم دمریو به سری شلکیهاتی و دبم تاسم خمکی تماوی دوري سری دابم دنیام باش نه لسر وصیتی خوې بردم نه خانقاله دایکم ناشتین ګرامو مال من دل د ګریان خوشکم ببراکمی گود خمخو که کمان لجه لجی مانه او قصه یا وک دمبین لگوزه سرو نخون حل کونی کونی فرمیسکانی برالا کردو گریم اما گریان تا با کلو کم دامرت اشنا و روشنا لم لولولا حتنا سر خوشیم ایوان تیدابو هر لعستاوا تمحین کرد بوا پرچزوی کن من دیان گود ایواتازه نتوانن به وی بابتن لیره ژمله ده بو د ینګو لبرسان مردن امجر فکر ملو دکردو کدا به لبرسان مردن چون به بوم حل نه ده بو پر نه هم دی واه چمله و شپاک تی بو سی پال کنه نه یو مرن به خوندنو و نه ای چی شپکم تا امر نه زانیو مکاسب چیا نه لجو تو گا سرم درد و دو بره بچوکو خوش ک کم تو باب کومردوا سیاست تمن قرزدارو پاتالی دومان تنیم منګه کی سی دره بو غلطه ناوین راو شمقار اگر بزانی که دم مرشک به تمنیکو پنچ کیس بو د زنه سیاست تمن چن بو بلم زوري پنچو ک دستم له ناهمې دی برداو شان مبرکرده من جلا زنجیر درکی بو پلاوی حو تمم کردرا بو لو سا و نخون کړابو دم با چوار بزنزاو با کاری لوا گیسکو بزنم دکرگو دم برد بازار خورگو قبا کندی ماوی چو داریم کرد خموها شرزای کاسپی لاده کرد که کونه پیاوان پرسیان پیدا کردم که با چی بچینین کم کم دا بوجه اماو بلامدیسان جیان زور فقیران راد بوراو شکری خواه من دکرد شوانه تدرنگ زستانان لمزگود جورابین من دکرد چراش من فتیلا بو همیشه که دستم بناو کاپم ببردايه قرمي رش نه فد بدسمو دهات زستاني کي سراسر پي خورمن نه بو بناني وشك رامن بوارد خندواريم چند بو لسائيل برکردني قصيده عربيکان چن وشيك عربيم ده زني بلا منيش همو ملای ولاتي خومن نقس كردن نخو نو تازه نه هيچ لشر اجدا تططبي كم لا فتح القريب مناهیز دا کردو نویه نا نابوم ملاو رحمن لفارسی دا خراب نابوم گلستان و بوستان و یوسفو زلیخای جامیو تاریخی نادرم بدرس خوینده بو دمتوانی نامه به فارسی بنوسمو بخویند موا زیکی دا دوازه سال جیانم بگلایی راب رابو خوم با فیربون مندونه کرده بو تازه پشیمان بو موا دستم کرد با متالاو خویندنو و خوندن للای خوم شوان چرای نوتم لپیش خو م دادنه او کتبم د خونده وا کتبی چون تروشک بیتامو بتام هر ل امیر ارسلانی رومیو تا شیرویو سیمین فلکنازو ترما شو ترسا زوا تا دغه تا حافظو شانمو شتدر زورشوان و به خوندنه وا خافلوم و تاو حالاتو چراکم دایسی لا او شیل جیریم با بی اوا بخوام بزانم بو فارسی فارسی زانشی مناسب. هندیک با هندیک هندگیگ بناگد جوتا گایکم بسیط من کری. دگل کابرایگ بوی نشری که کارم بی. توتنو بیستانش من کرد. کابرا که جایدرو گیشه خویلی دا. گوتي من توتنو بیستانم نوه. چاری نچار خوملی گیف کرد و خری کی توتنوانی بوم. توتنم بن کول و کردو پایست وقت نمی‌بردش کرد، پایش لو پیست من بود. پریگ کوتالی پشت کردنوی من دالانی لدرچو، دم ملکه‌سپی شیرین بود. ورد وردام مرم کری، ماینم کری او، چون ما مالک لرزی مالان، بلام جیروگرافیتر هاتبر، صادق 88 هشت مانگ بود. دایک میردی کرده او، بچه هشتین، خوشکم هشتام من دال بود. ناچار بوین، لجنی ناودی یارمتی بخوازین که بنان کردن و مالات دوشین و مشکشاندن را بگن که آوانیش جگه لحقی خویان نیوه بنيوهان دادزی. وطیان چهر اویه جنبینی که هم آگای لما هم آگای لبرا چکو لکد ببه. کوت ما حولی جنهنم. لهر چویه کی جهکیان ناو دبرد که جوانو سرم لیده یان من کیفم فیلم نیده یا یار اوان پیم رنج کدگل کارون د چمو بوکان ل رتوش کیج بوین کد شو مزرای باوکی زورم دل گتی اویش نیو او رچله دمو زوری نبرد که خو راستن او کچه دگل حوالانی خو یات بو ترغه بو سیرانو بو سیرانو ماینکه ل حوشه امه بست بو خوی میوانی حافظ یک حافظم کرده دلالو بو ساز دم خو مو کس کی ترش شو لای باوکی باوکی کچوتی با من دالی لسر بیشکا لکس ماره مارا کردوا کنا ایوی مردی پیپکا با قایل بی با باوی ددم با پرسی پیپکم دیار بو پرز با قازان جمبو او جر پرسی دوله من دی دیمه مالد بزنم چطهیا وتم باشا دوای ای دو روش من همو فرشونینی آوائی دخوازماوا مرو مانگای که زوریش دخما حوشا او سادالم دوله مندم ما څوګه کزبده ولا منده دی اجر له استا فقیر ترت بوم د بیلګ جابې من شرې عمرم د وی ک سوال شم د گلکا کابره راسته طلاق کیجم بسط من کړې و ما رم کړ او ابو مخاونجن بلان هرجن خدا بو هرچند باکی بچته دزو تو شو جنګ نه بو او توا په زور نرمونیانو په صبر حوصله زور فهمیده، کارزان لهمو ورزیری اک پتر لورزیری سری درده چو کابانی که کمیونه بو زورزو کاروباری منی گرت بو از توی خوی و مال راده گیشت همیشه رو خوش و گش بو دوستانی گوندیدی کم دیان گود خوزگه اگر میوانی مال تو دبین تو لمال لما نبی چون که سیزاده عیشه لخود پتر قدرمان من دگره. لکچی سید قادری بغدداغی کریکم دنیا دنیاو پاش 5 روز مرد پیره جنان دیان گود آلاو شو بردویانا جاریکی دیکا حای میلا بو لو من نخوشی گرانتم گرتو زور پیسی خستم دا ترسی گرتنوانه دا بوایا کس نزیک میکوید او جنان آرقی لشمی بزمان دا من شابو موا بلام او زوری نبرد کتوشی گرانت هاتو پاش نو روش به نخوشی کریکی لبرچو بو خوشی مرد لسر را بیکسو حتیو بوموا زمانہ لباتی او توزه خوشی جانم تا لا او جهنموتی بګرو ده دکردم لقاصید درې جکی برو مکولینم دا با سکم لیو کړدو وا ژیان جار لترغه جړ تالو جرش نو پر لهو راز لبیر مزستان یک تابها پیخرم نه بو برچا نانیوش بو لبیر مسالق قند گران بو بو چن منگ یک چه من با کشمیشو نقل دخوارده و بلام لدوه یکانده بانیم چه دوله مندی کی لاده حساب ده کرم بوخم درسم ببرا گسکو برای گسکترم ده گود زور زحمت من دالگ قت نیا زوخی لسر خویندن بی بیرم زور لیک ده کرده کو که او برایانم امانتی بابنو لملی مندن اگر نخوندوار وردر من خیانتم با امانت کرده زوریش گران بو دست لجیانگاده که دگلی رهات بون بردمو بچمشار که هیز لکاس بیشار سرم درناچه آخری لبرام که هرچی دبه بابه بی تنیا برا کانم بتوانن بخوینن لپر قراری خومده مالاتکم سرجم فروشتو حتم بوکن خانونی چی پوتکی پیسکی للای سروی بیزدوتو برامبر با حوزی بوکنم منجه بسیت من بکریه گرت که حوشوک یکو نو و یکو وطاقیق بو پاشمه اویک بحو ست منم کریو شاری سابلاغم ده 800 ست منو قیمت کم بجاد جهتا معلوم ده به کلبوکان چمده کرد باوچانک بدینو و سر اوانی که ناسیومنو لبیرم نچنوا یکم سید راشیدی خانقا پیری که قدو بالا بلندی برگشه که دریجو پانی زور جوانوا هر لفقیهتی و دوست نزیکی حرقی شاعر بوا کبابیشم بابیشم هر دوستانی زور خوشویستی و سید رشید بوا سید رشید جنین هینا سالهای سال بوا هر لزمانی مانی شیخ و لخنقا بوا ترک دنیا حدری که بوا همیشه سماوری لبرد ایسا همو قرآنی لبر بوا بماناو بهمو وردکاری بوا زور بای کاتی بدنگی زور خوش قرآنی دخوید دیتوانی با کردی و فارسی شعری زورباش باش هانیه تاو لما لا چاککانی عربی داش میردره مجلس و قصه اونده خوش بو که هرکس جاره که قصه دی دی با هرگیز من روشگار ایک شعر و نام دست خطیکانم کوده کرده و که براستی لنرخاندن نین بلان بداخو فوتاون دو غزلی اوم دست کوده که که فارسی و اویتریان کردی بو استا لحر یک یک یا دو بیتم لبرماون لغز لکر دیا کد آداله لچاوم دایو چاوم پرلاوا و رئی قلب نی تیراومم شو رقیب زانی غریبی کوئ نگارم و کوسکبوی دو ریداومم شو جاریک رئیت کی قرنیعای مامش کنایی یوسف دبی دچت لای ک قرنیعال نسرکی شکردن دگلماله کمالی یا خوبی پیدا لن درید کا تکه باب کا دری نامی بودانوسیو دوای چند یک دیتاو دلی آغا نامکی توی فردا گوتی او صوفیانی خانقا آغایتیم لیتی گدن سید رشید که تخلوسی شعری چاوش یان شهید بوا بودانوسیتاو ظاهیرا فرموت من سردارم و خاون بشم جیرودارم پیدوی چون شعر کلیم آمشم دست لیوسف برمدا بو خرگلی یاقوبیان بردده بگونم چکیرم پیدا چه من چاوشم همو کاز جنوی کاک سیدی پی هلگوتنی خلکی پیخوشتر بو بختور لخانقا او کس بو کل مجلسی کاک سیده حاضر بی من هرچند من داله کش بوم چون کا کاک سید باب می زور دویست زور جار را گیر دم بچم خزمتی و جوه لفرمایشتانی بگرم جگل لقصه جفن جکانی که ارستاش بسر دمو و ماون زور چواری نو تاگ بیتی سیرو سمره هبون لګل عبدالله الله بی مسباح دیوان دا نامی زوریان به شعر پیګور و تو باسی سعید بتنیه كتب اگر درفت حبې د بی کوکر ته و نه فوتي ملا رحماني شرف کندي قد بولندي ریشی شوار پنځه یی هبو کمندم دې لن یوان پنځه او شزدا بو هرګه کله شرف کنده ود هاته خانقاه وقضلن دوري کند دادن که دندوک لچاو جوانه که او خلق ده دورو دوریو بقسکانی که فیاد دهد. دمو زراوی زور خوش بو. قسکانیشی هموی گلتو گمه بو. تکیه کلامی ونکیه بابله بو. روش کمالیک لیکو بوینه و. صوفیه که ریشپانی ملستور در ری با خلقه دو خویگیند حاجی ملووتی. حاجی ماموسته. اری بشر ردین خیری زوره. اویش فرموی. و که بابله، اری والله ردین اوانده باشه که هر نبیتوا تو بروانه، من لوتا ام ردینم هشتوتوا کنگم تو جران هر دیانگود لقونی بم، استادلین های لردینی بم حاجی باب شیخی تورجان شای ایران و آسای سر بجواهیری خلات کرابو جرک دزی لمالی کرابو لزنبیل بوم حاجی ملاحد، سید محمدی زنبیل لی پرسی لکیو و تشریف دینی و تي لطور جانوا بحاج بابا الشيخي منتوا بوم و تي اره معلوم بود چيان لدزيوه و تي ونكي بابا له مجوه كيان لبردوا جارك لقون دي بوم حاج ملاهات لجنگي قساندا مصطفى بگي آغاي ايشاباد كتابيكي بناوي شمس المعارف كبرا هينو تي او وفق زور اجایبي تدايا حاج ملاهات و تي اغا امشتان همويدرو دلسن من باورم موسیح رو جادوآن نیا. اگه جا جاگر علمی هی وقت و جورا اما بفرمی جاهل کان قرب سرد دسا و الله اما اتو دفرمی من دعایی پیدا کردوا اگر استعلم دیواره بنوسمو قائمش کی تیا شخینم چندی بمبه هنجون دیت حاجی ملا لال و نکی بابله. اوها سنا رنگ آودی به دیواره که او دزبه جارک حاجی ملا لبن دیواری مزگو شرف خويده بو بر بروشکو چن کس کیج له دوري بوين کابرا یک بویدا را بردو هر پرته ولایبو حاجی ملا پرسي او تا؟ وتي حجم مستا هر ليم کرے قرض نصر سعیدی مام حمدی سبب تر بده شایم بونه کني حاجی ملا وتي و نکه اگر ضرورت لازم بوید که بیاز د حاجی ملا دغل سعید مينانه وکدا بفي برو خانقادين سعید جوکه که لیده، بلا هم دبینی حاجی نبزهاتیو نا آوریل داو، دیاره دبینه بیسته بی ماوه یک بیدنگ درونو سید دلی، حاجی ماموستا چونو واحیز فرمایش دیگ نفرموی؟ حاجی ملا دلی، باور پکلو دموا، او هر خوام دزرینمو دنقینم، چپکم، بو بدبختی فرمایش تی وکتو ملایشی دولمنډ خوون ګوند بناوی ملا کریمي ګول کډیان ګود سوت خور مردبو ینا بو یانه خانقہ کسو کارو کری ملای مردو لحجری شیخ محمد بون حاجی ملاش لوی ابو کری کابرای مردو کوله کی تسکنی او دامینی لپیش شیخ محمد دانه وتی باوکم وسيتي کردو تو د بریکی محمد کبه حرامي د زانی وتی من پیرمو او کوله قرسنات ولم خلګرم کړه کو خزمکان وتیان الا دبی ابتهاو وسیتی الارز ندهی. شیخ محمد فرمی دچار حاج ملا با بو تو به حاج ملاوتی قربان قدیمی گتویانه مراثی کربوکانتیاره. بنا آبوا من باشه. باور که کرو خدمی مردو لقمه بترپی کنین. بون منا آوتن نکتنه مجرای وا. باسی حاج ملاش دشید ناوک تی به یوق رشتی مروری علی ادین سجادی خری. گوگرانی عزیز به شیحوتمی کتیبی چشتیم جوری حجر مکریانی من با خوند نوا. تا بشت که تر همو لایکتن بختوار بجین.